ای طالب روزی، بنشین که بخوری، و ای مطلوب عجل، مرو که جان نبری. جهد رزقر کنی وگر نکنی، به خدای عزوجل و روی در دهان شیل و پلنگ نخورندت مگر به روز عجل.